السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناع لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين نتقرب الى الله بحبهم والبراءه من اعدائهم السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ورحمه الله وبركاته واسيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله رایت تقوى الهی شرط قبولی تمام اعمال و عبادات در قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین این آیه کریمه گرچه درباره یک مورد خاص وارد شده اما این مورد او رو اختصاص به خودش نمیده وقتی که دو فرزند حضرت آدم علی نبی جنابعالی و علیه السلام فنا شد قربانی به درگاه خدا ببرند در قرآن می که پیامبرا شما این قصه رو و این قضیه رو برا مردم بگو هنگامی که این دو پسر آمدن تا قربانی کنن قربانی یکی از این بچه ها پذیرفته شد و دیگری پذیرفته نشد اونی که قربانیش پذیرفته نشد از روی حسد و خودخواهی چون عملش پذیرفته نشد نسبت به برادرش کینه و غیز به خرج داد گفت رو خواهم کش. حابیل هم در جواب میدانست که علت این ناراحتی او این است که این قربانیش قبول نشده گفت ان نمایتقب الله من المترم امروز هم در سراسر کشور و جهان اسلام مسلمانان زیادی به این عمل مستحب و معکت میپردازند قرآن هم به تمام اونها این پیام رو میداد. لن یناال الله روحومها ولاادما اوها بدونید کسانی که قربانی میکنند در این راه خیر قدم میگذرند از این گوشت ها و خون‌هایی هایی که ریخته میشه چیزی به خدا نمیرسه اونچه که ارزش داره به درگاه خدا بالا میره تقوا قمود و لاکن یناال و تقوا. این هشداریست این آیه کریمه یعنی همه ما در همه کارهامون ملاکمون تقوا باشه. روز عید سعید قربان هست روز امتحان بزرگی برای بندگان خداست. تا درستی آن چیزی رو که در مدرسه دین مؤمنین آموختن امروز در امتحان به اثبات برسونن و اصوه مؤمنین در این امتحان بزرگ حضرت ابراهیم و اسماعیل هستند که به الله در کشور ما هم از این ایسارها و شهادتهایی که همچون حضرت ابراهیم و اسماعیل داشتن وجود داره به برکت انقلاب و خاندان مؤذل شهدا و ایثارگران به خصوص مدافعین حرم از این نمونه هستن که اخیرا هم شهید محسن حججی و خاندان محترمشون به اصفاد رسوندن که در مدرسه عشق و عرفان تسلیم خدا هستن پرودگار ما همه ما رو در امتحاناتی که داریم موفق بگردان توفیۀ ایمان مستحکم و انجام عمل صالح رو به همه رحمت بفرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو من احد صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناء لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلى على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن لقائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا فاطمة المعصومة برحمة الله وبركاته حوسیکم عباد الله و نفسی به الله یکی از بالاترین مقامات در سیر الله مقام محبوب خدا شدن هست کسی که محبوب خداوند تبارک و تعالی بشه آثار و برکات حیرت انگیزی نصیب او میشه و راه رسیدن به این محبوبیت رایت تقوای الهی چون خود قرآن فرمود ان الله يحب المتقین ماه زلحجر و شهر ولایت ماه امامت و ولایت گفتن این به خاطر مناسبت‌های زیادی است که در این ماه در ارتباط با ولایت و امامت به اشکال گوناگون وارد شده و او جهان عید سعید قدیر هست عید سعید قدیر اختصاصی به شیعه نداره ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام مربوط به همه انسان هاست همان چیزی که جهان امروز به ویژه کشورهای اسلامی به شدت از فقدان اون رنج میبرند. و همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله رزما امام خامنه ای مدزل العالی در پیام حج امسال فرمودن رؤسای کشورهای اسلامی و نخبگان سیاسی و دینی و فرهنگی در دنیای اسلام وظیفه سنگینی بر دوش دارند. از جمله وظیفه متوقف کردن این حرکات و حملاتی که دشمنان در کشورهای اسلامی به صورت بسیار تأسف انگیزی مرتکب میشند، خصوص از همه آنها مهمتر مسئله دفاع از مردم فلسطین. و ملتی که نزدیکه به هفتاد سال این بندگان خدا برای کشور غصب شده خودشون مبارزه میکنن و ریشه این همه وادادگی و انحراف در این مسائل و این فجایع این است که ما در برابر حجوم و حملات دشمن نابکار به وظیفه شرعی و عقلی خودمون عمل نکردیم هم شد و الكفار کفار رو از یاد بردیم و هم رو هما و بینهم رو به اینها رو جابجا به کردیم به آن که همه کشورهای اسلامی به رهنمودهای قرآن و اطفت بازگردن که سعادت دنیا و آخرت همه در سایه ولایت اهل بیت تأمین شده و کفار و مشرکین و منافقین در طول تاریخ غالبا قابل اعتماد نبوده بلکه ضرر های سنگین و فسارت باری رو بر مردم وارد کردن. در پایان نکته ای رام عرض کنم در این ایام ازدواجهایی صورت می گیره و در این ازدواج ها محریههایی تعیین میشه. گاهی وقتا راه افررا و تفرید طی میشه. بعضی یا ها محرییه های سنگین قرار میدن که مرزی نظر شارع نیست، و پسندیده نیست از نظر شرع مقدس بعضی راه دیگری رتیه می کنند. بسیار ساده و گاهی وقتا از تریبونه هم گفته میشه که مثلا فرض بفرمایید کسی برای ازدواج یه ذکری را تعیین کرده که داماد این ذکر را بگوید یا فلان کار معنوی را انجام بده گرچه اینها با تکلف ممکنه به عنوان محریه قرار بگیره ولی بهتر آن است همونجوری که فقاها اعظام فرمودن محریه ها رو جوری تعیین کنن که مالیت داشته باشه حضرت الله یزدی رئیس شورای عالی جامعه محترم مدرسین تذکری در این باب دادن که خدمت شما من اینو عرض کردم محریه ها جنبه مالیت داشته باشه حالا اون رو کم بگیرن به اندازه بگیرن که در وسع ادامات باشه و مسائل معنوی مثل تلاوت قرآن مثل ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل اینها به عنوان تیمن و تبرک باشه بر مسیر شهر حرکت کنیم تا ان آنچه را که مرضیه نظره ولی جه سجال الله تعالی فرجه شریف هست، همون انجام بشه پروردگار و انس ما رو با قرآن و اثرت زیاد بگردان گمراهان جهان را به مکتب اهل بیت آشنا بگردان فرج مولا و آقایمان امام زمان را برسان در این روز عید روح و بشارتی به روح متحر امام مرواح متحر شهیدان مراجع مازین و رفتگان از اهل ایمان آعید و واصل بفرما مریضان اسلام جانبازان عزیز شفاب و سب مرحمت بفرما اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات اله من و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته